باد از یزدان درود بی کران بر روانه موره سے جنم مصطفا ای مسلمان ہو سلامی بھی ادا چون کہ دردت کردے دل مان مصطفا درد ما را گشت در, در, در مان مصطفا దే మారా నమేన సోస్తఫా ఇన్ జహన్ తారి కుబుధోబీ ఫలమ రాస్తా దర్ మనోస్తా ద మారా నమే సన్ఫా ఇహన్ తారి కుబుధోబీ ఫలమ رضا غون مصطفا باد از یزدان درود بی گران بر روانه مونسے جنم مصطفا اے مسلمان تو سلامی دی ادا جون کہ دردت در کرد درد مان مصطفا بحر امت مہنتے بی ہات کشید رنج و زحمت شد فراوان مصطفا دین ہاوشد کامل از انداد او گردے خالق دل پہ ادیان مصطفی باد از یزدان درود بی کرن بر روانه موره سے جنم مصطفی اے مسلمان ہو سلامی بھی ادا چون کے درد دردت گردے درمان درد ہو مصطفا داده قربانی برای دین حق جمله یاران کرده قربان مصطفا چه رهش خونین و دندانش شهید کرده بحر دین ازدن مصطفا بحر امت مهنت بیهات کشید رنج و زحمت شد فراوان مصطفا دین هم شد کامل از امداد او کرده حال دین به ادیان مصطفی باد از یزدان درود بی کران بر ربانه مونس جان مصطفی ای مسلمان دو سلامی بی عدد چون که درد در کرده درد مان مصطفی درد ما را گشت در من مصطفا దారా నమే ఇన్ సమోస్తా ఇహన్ తారి కుబుధోబి ఫ్రూ కాలమరాఫా దర్ మనగర్ మనోస్తా దారా నమే సన్ మోస్తా ఇ జన్ తిబుధోబీ ఫే ఆల روشن روغن را مصطفا باد از یزدان درود بی کران بر روانه مونس جن مصطفا ای مسلمان تو سلامی بی ادا چون که دردت کرده درد مان مصطفا بحر امامت مهنته بیهات کشید رنج و زحمت شد فراوان مصطفا دین حل شد کامل از انداد او کرد خالق دل به ادیان مصطفا باد از یزدان درود بیکران بر روانه مرسے جنم مصطفی اے مسلمان ہو سلامی بی ادا چون کہ دردت در کردے دل در مان مصطفی داد قربانی برائے دین حق جملہ یاران کردے قربان مصطفی چہرہ شکونی نو دندانش شہید در ده بحره دین از دان مصطفا بحر امت مهنت بیهات کشید رنج و سخمت شد فراوان مصطفا دین هر شد کامل از امداد او قد حال دیبه ادیان مصطفا باد از یزدان درود ادیگران در روانه مونسے جنم مصطفی ای مسلمان تو سلامی بی ادا چون کہ دردت در کرده درد مان مصطفی